جن خودخواه نوشته ی ریچارد داکینز فصل 13 گستره وسیع ژن کشمکش آزاردهنده‌ای در درون نظریه ژن خودخواه برپا است این کشمکش درگیری بین ژن و بدن فرد است بر سر اینکه کدام عامل بنیادی حیات به حساب از یک سو ما تصور فریبندگی از DNA ای های همتاساز و مستقل داریم که مانند بوز کوهی آزاد راحت از نسلی به نسل دیگر می‌پرند و به صورتی موقت و اتفاقی در ماشین بقا کنار هم جمع شده مارپیچهای نامیرایی کشته های, های بیپایانی از میراها را که در مسیرهای های خود به سوی ابدیت گام بر میدارند به دیار عدم میفرستند. و از آن سو به بدن خود افراد نگاه می کنیم که هر کدام یک ماشین فوق‌العاده پیچیده و منسجم و یک پارچند و هدف واحدی دارند. اینطور نیست که بدن حاصل گرده همهی بیشی رازه و گذرای عوامل ژنی ناهماهنگی باشد که فرصت کمی برای آشنایی با هم دارند و مجبورند فورا سوار بر تخمک یا اسپرم روانه سفر بی انتهای جنی خود شوند. بدن داره یک مغز تک ذهنی است که همکاری اعضا و حواس را برای رسیدن به هدف واحد هماهنگ می کند. بدن هم به نوبه خود همچون یک عامل مستقل و تحسیم برانگیز است و همین گونه نیز رفتار می کند. در بعضی از فصلهای این کتاب ما به درستی جاندار را عاملی در نظر گرفتیم که تلاش می کند همه ی را به نسل بعد انتقال دهد. تصور ما از هر جاندار این بود که با رعایت اقتصادی پیچیده بویی با استفاده از محاسبات منافع کارکردهای مختلف ژنی را برآورده کند و در های دیگر اصول و دلایل بنیادی از دیدگاه ژن ارائه شد بدون در نظر گرفتن حیات از دیدگاه ژن دلیل خاصی نمی‌بینیم. برای اینکه موجودی موفقیت تکثیر خود و خویشاوندانش را مثلا به طول بیشتر عمر خودش ترجیح دهد با این تناقض که نگاهی دوگانه به زندگی است چگونه باید کنار بیاییم من تلاش خود را در این راه در کتاب رخنمون گسترش یافته شرح داده هم. کتابی که بیش از هر دستاورد دیگر در زندگی کاری مایه غرور و شادی هم شده است این فصل چکیده مختصری از بعضی مطالب آن کتاب است اما واقعا ترجیح میدهم شما همی حالا این کتاب را کنار بگذارید و بروید به سراغ رخنمون نمون گسترشی آفته. The Extended Phenotype انتخاب داروینی در هیچ روی کرده معقولی به این موضوع یک راست سراغ ژن می رود. دی ای مخفی در پروتئین پیچیده در لفاف قشا محفوظ از جهان و برای انتخاب طبیعی غیرقابل قابل رؤیت است. اگر انتخاب میخواست مستقیما مولکول ملکل ای را برگزیند. برای این کار به زحمت می یار می همه جنها مثل همند. هم. درست همونطور که همه نوارهای جذب صوت مثل هم به نظر میرسند. تفاوت مهم بین جنها فقط در اثر آنها ظاهر می این معمولا به معنی اثری است که در فرایند رشد جنین دارند و به این طریق در شکل و رفتار بدن خود را آشکار می کنند. ژن جن موفق ژنی است که در محیطی که تحت تاثیر همه ژن های دیگر نیست هست اثر سودمندی بر یک جنین مشترک داشته باشد منظور از سودمندی این است که باعث شود آن جنین به یک بالغ موفق تبدیل شود بالغی که در تولید و انتقال همان ژنها به نسل آینده کارآمد باشد از واژه فنی رخنمون فنوتایپ برای آن ویژگی‌های ظاهری استفاده می‌کنند که ژن در بدن ایجاد می‌کند آن اثری که ژن در مقایسه با آلل‌هایش از راه رشد بر بدن می بذارد. اثر رخنمونی بعضی جنها مثلا ممکن است رنگ سبز چشم باشد در واقع بیشتر جنها بیش از یک اثر رخنمونی دارند مثلا رنگ چشم سبز و موی مجعت اینکه انتخاب طبیعی بعضی جنها را به بعضی دیگر ترجیح می‌دهد نه به خاطر چگونگی خود آن جنها که به خاطر اثر آنها اثر رخنمونشان است داروینی ها اغلب در مورد ژنهایی بحث کردند که اثر رخنمونشان باعث سود یا زرر رساندن به بقا یا تولید مثل کل بدن شده است. آنها معمولا منافع خود ژن را مدنظر قرار ندادند. شاید تا حدی به این دلیل که تناقض درونی این نظریه خود را چندان نشان نداده است. مثلا ممکن است جنی در بهتر کردن سرعت دویدن یک شکارگر موفق باشد. تمام بدن آن شکارگر از جمله همه ژنهایش با تندتر دویدن او موفقتر می شون. سرعت او باعث می شود زنده بماند و بچه بیاورد و بنابراین نسخه های بیشتری از همه ژنهایش از جمله آن ژن تند دویدن را منتقل کند. در اینجا آن به براحتی رنگ می بازد زیرا چیزی که به نفع یک ژن باشد برای همه بدن خوب است. اما چه می شود اگر اثر روخ نمونی یک ژن برای خودش خوب ولی برای ژن های دیگر آن بدن بد باشد؟ این فقط پرواز تخیلات نیست. مواردی از آن را می شناسی. مثلا پدیده چشمگیری که گرایش میوزی نام گرفته است. اگر یادتان باشد؟ میوز نوع خاصی از تقسیم سلولی است که در آن تعداد کرموزوم ها نصف می شود و سلول های اسپرم یا سلول های تخمک را به وجود میآورند. در میوز معمولی این تقسیم کاملا تصادفی است از هر جفت آلل فقط یکی این امکانات دارد که وارد یک اسپرم یا تخمک خاص شود اما به همان انداز احتمال دارد آلل آن در جای او قرار گیرد و اگر در مورد تعداد زیادی اسپرم یا تخمک میانگیر را حساب کنید معلوم می شود نصف آنها داره یک آلل و نصف دیگر شامل رقیب آنند تقسیم میوز مثل بالا انداختن سکه تصادفی است اما ما احتمال آمدن شیر یا خطر را مساوی میدنیم که آن هم یک فرایند فیزیکی و تحت تاثیر عوامل بسیاری است مانند باد، شدت پرتا و غیره میوز هم یک فرایند فیزیکی است و ممکن است تحت تاثیر ژن ها واقع شود اگر به طور اتفاقی ژن جهش یافته ای پیدا شود که اثرش چیز قابل مشاهده مانند رنگ چشم یا جعد مو نباشد بلکه بر خود میوز باشد چه می شود کنید در یک میوز متجسد احتمال اینکه در نهایت ژن جهش ای سر تخمک در بیش از این احتمال برای رقیبش است. چنین جنهایی وجود دارن و نام آنها تحریف کننده تفرق است. سادگی آنها عجیب است. وقتی بر اثر جهش یک تحریف کننده تفرق پیدا می کند، به سرعت در آن جمعیت منتشر می شود و جای آلل خود را می گیرد. این همان چیزی است که با عنوان گرایش میوزی میشناسیم. چنین چیزی رخ میدهد حتی اگر اثرش روی سلامت بدن و روی همه جنهای دیگر درون آن بدن فاجعه آمیز باشد. در سراسر این کتاب ما نسبت به این امکان که موجودات نسبت به هم قطاران اجتماعی خود زیرکانه تقلب کنند گوش به زنگ بوده ایم. در اینجا صحبت از تقلب یک ژن در مقابل جنهای دیگر است که با او در یک بدن. جیمز کرا متخصص ژنتیک آنها را جنهایی می‌خواند که دستگاه را به هم می ریزند. یکی از شناخته شده ترین تحریف کننده تفرق ژن تی در موش هاست. وقتی موشی دو ژن تی داشته باشد در کودکی می میرد یا سترون می بنابراین می‌گویم تی در وضعیت جور تخ کشنده است. اگر موش نری فقط یک ژن تی داشته باشد طبیعی و سالم است. جز از یک جنبه مهم اگر اسپرم های چنین موشی را بررسی کنید در نود پنج درصد آنها ژن تی را خواهید یافت و آلل آن در پنج درصد یافت می شود آشکارا این تعریف بزرگ در نسبت پنج درصدی است که مورد انتظارش است هرگاه در یک جمعیت غیر بهطور به طور اتفاقی با جهش آلل تی پیدا شود مثل آتش در جنگل به سرعت پخش می شود وقتی در سهنه بخت آزمایی چنین برتری فاهشی دارد، چرا زیاد نشود؟ چنان به سرعت انتشار میابد که خیلی زود تعداد زیادی از افراد آن جمعیت جنتی را دو برابر بر به عرص میبرند. یعنی هم از پدر و هم از مادر خود. این افراد میمیرند یا نازا میشوند و در زمانی کوتاه تمام میشوند. جمعیت آن ناحیه رو به انقراض میگذارد. شواهدی موجود است مبدی بر اینکه در زمانهای گذشته جمعیتهایی از موشها در طبیعت بر اثر همهگیر شدن ژنتی از بین رفتند. البته این طور که همه تحریف کننده های تفرق اثر جانبیشان مثل تی مخرب باشد. با این حال بیشتر آنها دست کم چند تأثیر نامطلوب دارند. تقریبا همه اثرات جانبی جنها نامطلوبند و به طور عادی یک جهش جدید فقط در صورت انتشار مییابد که اثرات جانبی مطلوب آن از اثرات جانبی نامطلوب آن بیشتر باشد اگر هم اثرات خوب و هم اثرات بد آن در سراسر بدن دیده شود باز اثر خالص آن بر بدن باید خوب باشد اما اگر اثر بد آن بر بدن ظاهر شود و اثر خوب فقط بر خود آن ژن باشد از دیدگاه آن بدن نتیجه خالص کاملا بد است با وجود اثرات جانبی زیان اگر یک تعریف کننده تفرق با جهش پیدا شود یقینا در آن جمعیت منتشر می شود. انتخاب طبیعی که در سطح ژن عمل می کند، آن تعریف کننده ژن را ترجیح می دهد، حتی اگر اثر آن در سطح فرد زنده نامطلوب باشد با اینکه تعریف های تفرق وجود دارند ولی چندان رایج نیستند میشود علت رایج نبودن آنها را مورد سوال قرار داد این صورتی دیگر از این سوال است که چرا های میوزی معمولا مثل بالو انداختن سکه تصادفیند؟ خواهیم دید با فهمیدن اینکه چرا موجودات زنده وجود دارند به پاسخ سؤال خود میرسیم بیشتر زیستشناسان وجود هر فرد زنده را مسلم فرض میکنند شاید به این دلیل که اعضای آن به شکل یکپارچه و هماهنگی به هم پیوسته است سوال درباره حیات در واقع مورد سوال قرار دادن موجودات زنده است. زیست شناسا میپرسند چرا موجودات زنده این یا آن کار را انجام می دهند؟ اغلب میپرسند چرا آنها به صورت گروه و اجتماع زندگی می کنند؟ گرچه باید ولی نمی چرا اصلا خود چیزهای زنده درون یک موجود زنده گرد آمده اند؟ چرا حالا دیگر دریا میدان کارزار اولیه برای همتاسازهای های رها و مستقل نیست چرا آن همتاسازهای های قدیبی به هم چسبیدند و در هیکل متحرک و سنگی ساکن شدند و چرا آن حیکل ها بدن افراد من و شما اینقدر بزرگ و پیچیدند برای بسیاری از زیست اصلا درک این سوال راحت نیست علت این است که برای آنها مورد سوال قرار دادن خود موجود زنده طبیعت سانی است بعضی زیست شناسان چنان دور می روند که دینه ای را وسیلهای در نظر می که موجود برای تکثیر خود به کار میبرد. درست همانطور که چشم وسیله است که موجود برای دیدن به کار میبرد. خوانندگان این کتاب تشخیص می که چنین نگرشی اشتباه ناشی از تبهر زیاد است. حقیقتی است که روی سر خودش خراب شده است. خانندگان همچنین تشخیص می آن نگرش دیگه. یعنی نگاه از منظر جن خود خوابه حیات هم مشکل بزرگ خودش را دارد مشکلی تقریبا عکس آن یکی این که اصلا چرا موجودات زنده وجود دارن؟ مخصوصا با این هیئت درشت و هدفمند و یک پارچه‌ای که حقیقت را برای زیست شناسان وارونه جلوه می‌دهد برای حل مشکل مشکلمان باید ذهن خود را از نگرش‌های کهنه ای که وجود موجود زنده را مسلم فرض می‌کنند پاک کنیم در خیلی این صورت داریم مسئله را مسلم فرض می کنیم. ابزاری که با آن می توانیم ذهن خود را بپالاییم نظری است که من آن را رخنه‌مون گسترش یافته نامیدم و اکنون مفهوم آن را توضیح می دهم. اثر رخنه‌مونی یک ژن معمولا شامل همه اثرهایی است که آن ژن در بدنی که هست ایجاد می کند. این یک تعریف رسمی است اما حالا ما می بینیم که اثرهای رخنمونی یک ژن را می شود همه اثرهایی که روی تمام جهان دارد در نظر گرفت. شاید واقعیت این باشد که اثرهای هر ژن محدود است به بدنهای پشت سر همی که در آنها جای می گیرد. اما اگر چنین باشد این واقعیت سرد و بیروه است و چیزی نیست که بتواند آنچه را مرد نظر ماست در برگیرد در تمام اینها یادتان باشد. اثر رخنمونی هر جن اسبابی است که ژن با آن خود را به نسل بعد منتقل می کند. تنها چیزی که می خواهم اضافه کنم این است که دامنه این اسباب ممکن است به خارج از محدوده بدن افراد برسد. در واقع به این معنی است که اثر رخنمونی ژن ممکن است به جهان خارج از بدنی که در آن است راه یابد. نمونه هایی از آن که به ذهن می عبارتند از سد بیدستر، لانه پرنده و خانه کادیس، کادیس ها ویژگی خاصی دارند، حشره قهوه رنگ کدری هستند که اغلب ما اصلا متوجه پروازشان بر فراز رودخانه نمیشویم. این وقتی است که بالغ باشند اما قبل از اینکه به صورت بالغ درآیند یک دوره طولانی را به صورت لارو در ته رودخانه می ولی لارو کادیس هرچه هست فاقد ویژگی خاص نیست. یکی از چشمگیرترین ترین موجودات روی زمین است با سیمانی که خودش میسازد و با مهارت خانه های لوله مانندی برای خودش درست میکند که در آن از موادی که تر رودخانه پیدا میکند استفاده میکند این خانه سیار است و با حرکت کادیس حرکت میکند مثل خانه هلزون یا خرچنگ با این تفاوت که جانور خودش آن را ساخته و اینطور نیست که آن را پرورش داده یا پیدا کرده باشد بعضی از گونه های کادیس از تکاهی چوب به عنوان مسالله ساختمانی استفاده می کنند بعضی از تکهه های برگ پژمرده و بعضی از صدف های کوچک ولی ولی شاید جالبتر از همه خانههایی باشد که در سنگ های موجود در محل می سازند. کادیس با دقت سنگ مرد نظر را انتخاب می کند سنگی که برای جای خالی توی دیوار نزیاد بزرگ باشد و نزیاد کوچک حتی هر سنگ را میچرخاند تا مناسبترین وضعیت را برای پیدا کردن جا بیابد حالا چرا این موضوع اینقدر جالب توجه است؟ اگر قرار بود هر چیز را جدا جدا در نظر بیاوریم، حتما ساختار چشمی یا مفصل آرنج بازوی کادیس بیشتر از معماری خانه سنگی نسبتا ساده او باید توجه ما را جلب میکرد. چون چشم و آرنج خیلی پیچیده تر و ترراحی شده تر از آن خانه اند، اما شاید به این دلیل که چشم و مفصل و آرنج به همان صورتی پیدا می شود که چشم و آرنج ما در بدن مادرمان پیدا شده. یعنی فرایندی که ما نسبت به آن ادعایی نداریم. پس آختم خانه بیشتر برای ما جالب است. حالا که اینقدر از مطلب دور افتادیم مجبورم کمی هم جلوتر بروم هر قدر خانه کادیس برای من جالب باشد ولی با کمال تعجب دستاوردهای جاندارانی که به ما نزدیک‌ترند بیشتر ما را تحت تأثیر قرار می دهد. تصورش را بکنید اگر یک زیستشناس دریا گونه یک دلفین کشف می کرد که می تواند شبکه توری پیچیده و بزرگی برای ماهیگیری ببافد که قطرش به اندازه طول 20 دلفین بود با چه قوغایی مطرح می‌شد با این حال، ما تار انکبوت را یک چیز مسلم و بیشتر مای مزاحمت در خانه در نظر می گیریم. تا یکی از شگفتی های عالم و هاههوی را مجسم کنید که اگر جنگ و دال از رود گمبه با عکسهایی از شامپانزه های وحشی برمیگشت که برای خودشان خانه میساختند. خانههایی دارای با خوب و آیخ بندی شده که آن سنگ ها با دقت انتخاب و مرتب کنار هم چیده و سیمان شده بودند. اما کرم حشره کادیس که دقیقاً این کار را انجام می‌دهد به صورت کوتاه مدت توجه ما را جلب می‌کند. گاهی گفته می‌شود که انکبود کادیس این هنر معماری را به صورت غریزی دارند، طوری که انگار می‌خواهند با استاندارد مضاعف آنها را توضیح کنند. ولی منظور چیست؟ این برخورد آنها را بیشتر جالب توجه می‌کند. بیا یک برگردیم سر بحث اصلی هیچ کس تردید ندارد که خانی کادیس یک سازگاری است که با انتخاب داروینی به وجود آمده است. باید انتخاب آن را ترجیح داده باشد. درست همانطور که مثلا پوسته سخت صدف را ترجیح داده است چون یک حفاظ محکم برای بدن است و به این ترتیب برای کل موجود و ژنهایش مفید است. اما تاکنون ما اینطور به خود فهمانده که منافع موجود زنده را از نظر انتخاب طبیعی اتفاقی در نظر بگیریم. منافع واقعی، منافع آن است که به پوسته کیفیت حفاظت کنندگی میدهند. در مورد صدف این یک ماجرای عادی است. پوسته صدف آشکارا جزی از بدنش است. اما در مورد خانه کادیس چه باید گفت؟ انتخاب طبیعی آن جنهای اجدادی کادیس را ترجیح میداد که باعث می دارندگانشان خانه های بدرد به خوری بسازند. آن جنها روی رفتار کار می شاید با اثر گذاشتن روی رشد دستگاه عصبی جنین اما چیزی که یک متخصص ژنتیک عملا می بیند اثر جنها روی شکل و دیگر ویژگی آن خانه هاست. آن متخصص باید جنهایی برای شکل خانه تشخیص دهد. درست به همان مفهومی که جنهایی برای مثلا شکل پا وجود دارد. باید پذیرفت تا کنون کسی خانه کادیس را در رابطه با ژن بررسی نکرده است. برای این کار لازم است سوابق دقیق اجداد کادیس هایی را که در اسارت زاد و ولد می کنند به دست آورد. و زاد و بلد آنها به این صورت آسان نیست. اما لازم نیست جنها را بررسی کنید تا مطمئن شوید تاثیر بعضی جننها باعث تفاوت بین خانه های کادیس ها می شود یا زمانی شده است. تنها چیز لازم این است که دلیل محکمی داشته باشید برای اینکه خانه های کادیس یک سازگاری داروینی نیست. در این صورت باید جنن وجود داشته باشند که تنوع خانه های کادیس را در کنترل داشته باشند. زیرا انتخاب نمیتواند سازگاری ها را ایجاد کند مگر اینکه تفاوت ذاتی وجود داشته باشد و از بین آنها انتخاب صورت گیرد ممکن است از نظر متخصصان ژنتیک این فکر عجیب باشد ولی به این ترتیب برای ما معقول است که ژن برای شکل سنگ، اندازه سنگ، سختی سنگ و غیره صحبت کنیم هر متخصص ژنتیکی که با این صحبت مخالف باشد پس باید با ژن رنگ چشم، ژن چین در نخود و غیره هم مخالف باشد. یک دلیل که باعث می شود این نظر درباره سنگ عجیب جلوه کند این است که سنگ چیز زنده نیست. علاوه تأثیر ژن روی کیفیت سنگ به صورت غیر مستقیم است. ممکن است یک متخصص ژنتیک ادعا کند تأثیر مستقیم ژن روی دستگاه عصبی است که باعث رفتار انتخاب سنگ میشود نه تأثیر روی خود سنگ اما من از چنین متخصصی می خواهم با دقت مقصودش را از تأثیر ژن روی دستگاه عصبی در نظر بیاورد تنها چیزی که ژنها به بهطور مستقیم تحت تأثیر قرار دهند ترکیب پروتئین است تأثیر ژن روی یک دستگاه عصبی یا در این مورد روی رنگ چشم یا چین خوردگی همیشه به صورت غیر مستقیم است. ژن نوعی از توالی پروتئین را تعیین میکند که ایکس را تحت تأثیر قرار میدهد، که آن Y را تحت تأثیر قرار دهد و آن Z را تحت تأثیر قرار دهد و در نهایت روی چین خوردگی دانه یا سیمپیچ سلولی دستگاه عصبی اثر میگذارد. خانه کادیس ادامه بیشتر این نوع توالی است سختی سنگ یک اثر رخنمونی نمونی ادامه یافته ی کادیس است اگر صحبت از جنی که در چین هردگی نخود یا دستگاه اصد یک جاندار نقش دارد معقول باشد همه این هم فکر می معقول است آنگاه صحبت از جنی که در سختی سنگ خانه کادیس نقش دارد نیز باید معقول باشد فکر ترسابه است. این دو نیست؟ اما گوریزی از آن نیست